ژن خودخوا نوشته ریچارد داکینز فصل 13 بخش 2 حالا ما آماده یک گام بعدی این استدلال هستیم های یک موجود زنده ممکن است اثر رخنمونی گسترش یافته روی بدن موجود دیگر داشته باشد در برداشتن قدم قبلی خانه کادیس کمکمان کرد در برداشتن این گام صدف حلزون به ما کمک میکند این صدف همان نقشی را برای هلزون دارد که خانه سنگی برای کرم حشره کادیس دارد صدف از سلولهای خود هلزون ترشح می شود طوری که یک متخصص رسمی ژنتیک به راحتی از ژنهای کیفیت صدف مثلا زخامت آن صحبت میکند اما از قرار معلوم هلزونهایی هایی که دچار نوع خاصی از انگل کرم تخت باشند صدف های خیلی کلفتی دارند. این کلوف بودن به چه معناست؟ اگر آن حلزانی که دچار این آفت شده است، صدف بسیار نازکی می داشت، ما خیلی راحتم را به عنوان یک اثر سوست کننده بر ساختار حلزان توضیح می دادیم. اما در مورد صدف زخیم تر چطور؟ شاید یک صدف زخیم آن حلزان را بهتر حفظ می کند، ظاهرا آفت ها با کلوفتر کردن صدف در عمل به میزبانشان کمک میکنند آیا واقعا چنین است باید دقیق تر فکر کنیم اگر صدف کلوفتر واقعا برای حلزون بهتر باشد چرا در همه حال چنین صدفی ندارند پاسخ این سوال احتمالا در موضوع اقتصاد نهفته است برای حلزون ساختن صدف کار پرهزینه ای است انرژی میبرد به کلسیوم و دیگر مواد شیمیایی نیاز دارد که باید از مواد غذایی که به سختی به دست آمده گرفته شود اگر همه این امکان صرف ساختن مواد صدف نشود میتوانان را صرف چیزهای دیگر مثلا تولید بچه های بیشتر کرد حل از که بیشتر امکاناتش را صرف ساختن یک صدف خیلی کلفت کرده برای بدن خود شرایط امنی ایجاد کرده است اما چه بهایی؟ شاید عمر طولانی تری داشته باشد اما در تولید مثل موفقیت کمتری دارد و شاید نتواند ژنهایش را به نسل بعد منتقل کند از آن ژنهایی که در انتقال به نسل آینده موفق نبوده اند یکی ژن ساختن صدف خیلی کلفت است به عبارت دیگر برای هر صدف این امکان هست که خیلی کلفت یا معمولا خیلی نازک باشد بنابراین وقت کرم تخت باعث می شود. هلزون حلزون صدف زخیم تری را ترشو کند. آن کرم به حلزون لطفی نکرده است. جز تحمیل هزینه ساختن صدف کلافتر. و ما می‌توانیم با اطمینان شرط ببندیم که این از مهربانیش نیست. آن کرم تأثیر شیمیایی پنهانی بر حلزون دارد که حلزون را وامی دارد از زخامت معمولی که خود ترجیح میدهد انحراف پیدا کند شاید این کار باعث طولانی تر شدن عمر حلزون شود ولی کمکی به ژن آن نمی کند از این قضیه به کرن چه میرسد چرا این کار را میکند حدث من این است که در شرایطی که چیزهای دیگر برابر باشد بقای بدن حلزون هم به سود ژن حلزون و هم به سود ژن کرم تخت است اما بقا با تولید مثل فرق دارد و احتمالاً باید توازنی بینشان در کار باشد در حالی که ژن هلزون از تولید مثل محروم می شود، برای ژن کرم تخت چنین نیست به این دلیل که یک کرم تخت فرضی هیچ تصوری از اینکه ژنش در بدن بچه های میزبان فعلیش گیر افتاده باشد ندارد ممکن است چنین شود و شاید برای جنهای کرم تخت های رقیب او چنین باشد با فرض اینکه عمر بیشتر حلزون به بهای در تولید مثل اوست جنهای کرم تخت سرخوشند که این هزینه از جیب حلزان است زیرا خود آنها هیچ علاقه ای به تولید مثل حلزان ندارند جنهای حلزان از پرداخت چنین ای ناشادند زیرا آینده بلند مدت آنها به تولید مثل حلزان بستگی دارد بنابراین نظر من این است که ژن کرمه تخت تأثیر روی سلول های ترشاک کننده صدف حلزان میگذارد که به خودش است ولی برای ژن هلزون گران تمام می شود این نظریه را می توان به آزمایش گذاشت ولی تاکنون کسی این کار را نکرده است حالا ما در موقعیتی هستیم که از درس کادیسا نتیجه گیری کنیم اگر نظر من در مورد کاری که ژن کرمه میکند درست باشد پیامد آن این است که می توانیم رسما بگوییم ژن کرمه تخت روی بدن هلزون اثر می گذارد. درست به همان ترتیبی که ژن هلزون بر بدن هلزون اثر میگذرد مثل این است که ها به بیرون از بدنی که خود در آن هستند نفوذ کرده و جان خارج را تحت تأثیر قرار داده باشند مثل مورد کادیسا. این بحث برای متخصصان ژنتیک نگران کننده است آنها دترن اثر ژن را محدود به بدنی که در است بدانند اما باز مثل مورد کادیس ها با نگاهی دقیق به منظور متخصصان ژنتیک از اثر ژن میبینیم که این نگرانی نابجاست. لازم است با فقط این را قبول کنیم که تغییر در صدف حلزون یک سازگاری با کرمه تخت است اگر چنین باشد باید با انتخاب داروینی ژن کرم تخت ایجاد شده باشد ما نشان دادیم که اثر رخ یک ژن ممکن است نه فقط به چیزهای غیر زنده مثل سنگ بلکه به بدن موجودات زنده دیگر نیز راه پیدا کند داستان حلزم و کرم فقط اول ماجر است مدت هاست که معلوم شده انواع مختلف انگل اثرات پنهان و حیرت روی میزبان خود دارند گونه ای از انگل میکروسکوپی تکیاخته ای به نام نوسما که لارو سوسک آرد را آلوده می کند دریافته است چگونه یک ماده شیمیایی بسازد که کاملا ویژه کا باشد. این کا مثل حشرات دیگر هرمونی دارند به نام هرمون نوجوانی که باعث می شود کرم حشره به صورت لارو باقی بماند. به طور عادی در سوسک تبدیل از نوجوانی به بزرگسالی با متوقف شدن تولید هورمون نوجوانی صورت می‌گیرد. انگل نوسما موفق شده است که ترکیبی بسیار شبیه این هورمون را بسازد. میلیون‌ها نوسما با هم جمع می‌شوند و در بدن لارو سوسک هورمون نوجوانی را به صورت انبوه تولید می‌کنند و به این ترتیب مانع از تبدیل آن به سوسک بالغ می‌شوند و آن لارو به رشد خود ادامه می دهد تا جایی که کرم حشره قولاسایی دو برابر اندازه یک کرم بالغ معمولی می شود. این موجود به درد پراکندن جن سوسک نمی خورد برای, برای انگل نوسما منبع سرشاری است. قول پیکر شدن لارو سوس اثر رخنمونی نمونی گسترشیافته ی آن تکیاختهی هاست. در اینجا به یک مورد تاریخی می‌رسیم که بیشتر از سوزکای پیتر پن به نگرانی فرویدی دامن می‌زند. عقیم‌سازی انگلی. خرس‌انگار دشوار انگلی می‌شوند که ساکولینیا نام دارد. این انگل از خانواده بالای کشتی چپ نوعی انگل دریایی است. ولی اگر به آن نگاه کنید یک جور انگلی گیاهی به نظر می‌آید. این انگل به صورت شبکی ریزی در عمق بافت خرچنگ بیچاره ریشه می دواند و مواد غذایی را از بدن خرچنگ بیرون می کشد. احتمالاً این اتفاقی نیست که یکی از اولین اعضایی که مورد حمله قرار می گیرد، بیزی یا تخمدان خرچنگ است. اعضایی را که خرچنگ برای بقا نتولید مثل لازم دارد، این انگل خرچنگ را عقیم می کند. مثل گاو جوان اخته که چاق شده باشد خرچنگ عقیم شده انرژی و امکانات خود را به جای تولید مثل در جهت پرورش خود هزینه می کند. به بهای تولید مثل خرچنگ انگل غذای زیادی به دست می آورد. خیلی شبیه همان داستانی است که من در مورد نوسما انگل سوسک آرد و برای کرم تخت در هلزون تعریف کردم. در این هرثه مورد، تغییراتی را که در میزبان رخ می‌دهد باید اثرات رخنمونی گسترش یافته ژن انگل به حساب آورد. بنابراین اثر ژن‌ها به خارج بدن که خود در آنند گسترش می‌یابند و ویژگی‌های قابل رؤیت بدن‌های دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهند. تا حد کاملا زیادی ممکن است منافع انگل و میزبان همپوشانی داشته باشند. از دیدگاه ژن خودخواه میتوانیم هم ژن تخت، هم ژن هلزون را انگلهای بدن هلزون به شمار آوریم هر دو از محصور بودن در یک صدف محافظ مشترک سود میبرند گرچه از نظر زخامت دقیقی که برای صدف ترجیح میدهند مثل هم نیستند این واگرایی در اساس ناشی از این واقعیت است که روش آنها برای رفتن از بدن این حلزون و وارد شدن به بدن دیگر متفاوت است برای ژن هلزونی، ترک این بدن از طریق اسپرم یا تخمک هلزون هست برای ژن کرم تخت این کار با روش کاملا متفاوتی صورت می بدون وارد شدن به جزئیات امر که به طرز گیج کننده‌ای پیچیده است نکته مهم این است که ژن آنها از راه تخمک یا اسپرم هلزون از بدن هلزون بیرون نمی روید. از نظر من مهمترین سوالی که درباره هر انگل میتوان پرسید این است. آیا ژنهایش از همان طریق منتقل میشود که ژن میزبان منتقل میشود؟ اگر چنین نباشد، تصور این است که به نهری به میزبان آسیب میرساند. ولی اگر چنین باشد، آن انگل برای کمک به میزبان هر کاری که از دستش برایت انجام میدهد. نه فقط برای بقای او که برای تولید مثلش، با تیه زمانهای های تکاملی آن انگل دیگر انگل به حساب نمی آید بلکه همکار میزبان است و سرانجام با بافت میزبان در می و از او غیرقابل تشخیص می شود. شاید آنطور که در صفحات پیشین گفتیم سلول های ما این طیف تکاملی را پشت سر اند. ما بازبانده های انگل های در همامیخته زمان های دوریم. ببینیم وقتی ژن انگل و ژن میزبان وجود مشترکی دارند چه اتفاقی میافتد سوسکای دارنسپ دچار یک انگل باکتریایی میشوند که نه فقط در بدن میزبان بلکه در تخم او جا خوش میکند تا بدین وسیله به بدن میزبان دیگری انتقال یابد بنابراین برای ژن چنین انگلی دقیقا همان شرایط مناسب است که برای ژن میزبان او میتوان انتظار داشت این دو دسته ژن به همان دلیل با هم همکاری کنند که ژنهای معمولی موجود در بدن یک جاندار با هم همکاری دارند اینکه ها ژن سوسک و بعضیها ژن باکتری باشند بیمعنی به نظر میرسد هر دو مجموعه ای از جنها به بقای سوسک و انتشار تخم آن علاقه نشان میدهند زیرا هر دو تخم سوسک را به چشم رویداد گذر به آینده می نگرند بنابراین ژنهای باکتری سرنوشت مشترکی با ژن میزبانشان دارند و از نظر من باید انتظار داشت که در تمام جنبههای زندگی با سوسک مشارکت داشته باشند از قرار معلوم واژه همکاری چندان حق مطلب را ادا کند. خدمتی که آنها به سوسک ارائه میکنند در نهایت سمیمیت است این سوسکها اتفاقا تکلاد دولادینده. مثل مورچه و زنبور اگر تخمی توسط نر بارور شود همیشه به ماده تبدیل می شود تخم بارور نشده به موجود نو تبدیل می شود به عبارت دیگر نرها پدر ندارند تخمی که از آنها به وجود می آید خود به خود رشد می کند بدون اینکه اسپرمی به آن وارد شود اما برخلاف تخم مورچه و زنبور برای تخم سوسکا آمبروسیا لازم است چیزی به آن وارد شود و اینجاست که آن باکتری ها وارد صحنه می باکتریها در تخم بارور نشده فرو میروند و آنها را تحریک می که به صورت سوک نر درآند. البته این باکتری ها درست آن نوع انگلیند که گفتم باید از انگل بودن دست کشیده و همکاری متقابل داشته باشند. دقیقا به این دلیل که با تخم میزبان منتقل می شوند. همراه با ژن خود میزبان، در نهایت خود بدن آنها احتمالا به طور کامل در بدن میزبان ادغام شده و ناپدید می شود. امروز هم طیف آشکار کننده ای را در میان گونه ای از خیسه ایوان کوچک بی روی شاختاری که شبیه شقایق دریایی است میتوان یافت. جلبک انگلوار بافت آنها را آلوده می کند. در گونه های هایدرا، بولگاریس و هایدرا آلتنوتا جلبکها واقعا انگل خیسهاند و به آن آسیب می‌رسانند. ولی در کلوروهایدرا وایری دیسیما اصلا جلبک از بافت خیسه جدا نیست و در سلامت آن نقش موثری دارد و برای آن اکسیژن فراهم می آورد. اما نکته جالب اینجاست درست همانطور که می‌توان انتظار داشت در کلوروهایدرا جلبک خودشان را به وسیله تخم آن خیصه به نسل بعد منتقل می کنند. در آن دوگونه دیگر چنین نیست. منافع جنهای جلبک و جنهای کلروهایدرا با هم سازگاری دارند. هر دو هر کاری که در توانشان باشد برای تولید بیشتر تخمهای کلروهایدرا انجام می دهند. اما جنهای آن دوگونه دیگر خیصه ها با ژن جلبک هماهنگی ندارند. یا مطابقتشان در آن حد نیست. برای هر دو مجموعه بقای بدن خیسه منافعی دارد ولی تولید مثل خیسه فقط برای جنهای خیسه مهم است بنابراین جلبک فقط انگلوار آویزان آن است و چون این نیست که در جهت همکاری با آن تکامل یابد تکرار میکنم نکته مهم این است انگلی که سرنوشت جنهایش با سرنوشت جنهای میزبانش گره خورده و در همه منافع با میزبانش شریک است در نهایت از رفتار توفیلیوال خود دست می کشد. در این وضعیت، سرنوشت یعنی نسای آینده جنهای کلروهای و جنهای جلبک جنهای سوسک و جنهای آنباکتری فقط از طریق تخم میزبان به نست آینده راه میابند. بنابراین هر محاسبهی که جنهای انگل جهت یافتن سیاست مطلوب در حد بخش از حیات داشته باشند دقیقاً یا تقریبا دقیقا به همان سیاستی میرسد که حاصل محاسبات ژن میزبان است در مورد هلزون و انگل کرم پهن به این نتیجه رسیدیم که زخامت مطلوب صدف برایشان یکسان نبوده در مورد سوسک آمبروسیا و باکتریاش میزبان و انگل درباره اندازه طول بال و دیگر ویژگی‌های بدن سوسک نظر یکسانی دارند ما بدونیم که بدانیم آن سوسک از بال یا قسمت های دیگر بدنش چه استفاده می کند، می توانیم این حدس را بزنیم. این پیشبینی ما از روی این استدلال است که ژنهای سوسک و جنهای باکتری برای رسیدن به آینده مشترک و مطلوب آنچه در توانشان باشد انجام می دهن. آینده مطلوب یعنی انتشار هرچه بیشتر تخم سوس ما می توانیم این بحث را به نتیجه منطقی برسانیم و از آن در مورد ژنهای عادی خودمان استفاده کنیم. ژنهای ما با هم همکاری کنند نه به خاطر اینکه مال ما هستند، بلکه به این خاطر که مسیر آینده آنها مشترک است. اسپرم یا تخمک اگر هر ژن یک جاندار مثلا انسان می توانست راهی برای پخش شدن خود پیدا کند که از مسیر معمول تخمک و اسپرم نمیگذشت از آن راه میرفت و کمتر مشارکت میکرد به این دلیل که با مجموعهٔ متفاوتی از محصول در آینده میتوانست از ژنهای دیگری که در بدن است احتمالا بربرداری فراوان کند ما قبلا به نمونههایی از ژنهایی برخوردیم که در تقسیم میوز به نفع خود عمل میکردند شاید هم وجود داشته باشند که از مسیر مستقیم اسفرم تخمک خارج شده و پیشگامان راه دیگری شده باشند قطعاتی از DNA وجود دارد که در کروموزوم جا نگرفتند بلکه در مایع درون سلول آزادانه شناورند و همانجا تکثیر میشوند به ویژه در سلولهای باکتریایی آنها را با نامهای متفاوتی مثل شپ ویروس یا پلاسمید میشناسیم پلاسمید از شپ ویروس هم ریستر است و معمولا فقط شامل چند ژن است برخی ها پلاسمیدها میتوانند کاملا به همدیگر تابیده شوند و به صورت یک پارچه کروموزوم درآیند. آنها آنقدر زریف به هم میپیوندند که محل واسط شدنشان را نمیتوان دید و پلاسمید را از بخش دیگر کروموزوم نمیتوان تشخیص داد. همون پلاسمید باز ممکن است دوباره خود را جدا کند. این قابلیت جدا شدن و دوباره به هم پیوسن دینه ها که در چشم به هم زدنی به بیرون و به درون کروموزوم میپرند یکی از جالب ترین یافته هایی است که بعد از انتشار چاپ نخست این کتاب به دست آمده است در واقع این یافته های جدید درباره پلاسمید را میتوان گواه خوبی برای تحیید حد حدسی دانست که در صفحات پیش و آنجا که کمی عجیب به نظر می رسد از بعضی دیدگاه ها واقعا اهمیتی ندارد که قطعی از است انگل مخرب باشند یا شورشیای های افسار رفتار احتمالی آنها یکسان خواهد بود من برای تایید روی نکته مرد نظرم از آنها به عنوان قطعه های شورشی صحبت می کنم پاره ای از دی انسان را در نظر بیاورید که می خود را از کروموزومش قیچی کند و آزادانه در سلول شناور شود شاید هم خودش را به صورت نسخه بسیار تکثیر کند و سپس دوباره به هم بچسبد و به کروموزوم دیگری ملحق شود. از چه مسیر غیر رسمی دیگری این همتاساز شورشی می برای رفتن به آینده استفاده کند؟ ما مدام سلول‌های از پوست خود را از دست می بیشتر گرد و خاک خانه ما همین سلول هایی افتاده ماست. از قرار معلوم ما مدام سلول های یک دیگر را تلفظ می کنیم. اگر آدم ناخون انگشت خود را در درون دهانش ببرد، وقتی بیرون بیاورد، صدها سلول زنده رویش است. با بوسه و نوازشهای اشاق، سلولهای زنده زیادی به دو طرف منتقل می شود. یک پاره DNA شورشی می سوار هر یک از این سلولها باشد. اگر ژنی می از طریق یک مسیر غیررسمی رسمی انتقال، به بدن دیگر وارد شود در امتداد یا به جای مسیر رسمی اسپرم و تخمک انتظار ما این بود که انتخاب طبیعی آن فرصت طلبی رو مورد توجه قرار دهد و سعی در پیشرفتش داشته باشد با روشهای ظریفی که ویروسها به کار میبرند، بعید نیست این کار هم نقش چینی آنها باشد البته این از نگاه نظری پردازی است که از دیدگاه ژن خودخواه یا رختنمون گسترش یافته به موضوع نگاه میکند. ما انصهه کردن هنگام سرماخوردگی را معمولا نشانه جنبی و آزاردهنده فعالیت ویروس می‌دانیم. اما در بعضی موارد احتمال بیشتر باید این باشد که ویروس ها برای اینکه بتوانند از بدن یک میزبان به بدن دیگری بپرند امدن این برنامه را راه انداختهاند آن ویروسی که از اینکه فقط با تنفس وارد هوا شود دلخور است کاری می کند ما صرفه یا عطسه محکمی بکنید. وقتی حیوانی حیوان دیگر را گاز می گیرد، ویروس هاری با بزاق او منتقل می شود. در سکا، یکی از نشانه های این بیماری این است که حیوانی معمولا آرام و سربرا خشنگین می شود و گاز می گیرد و کف به دهان می آورد. به جایی اینکه که مثل سرکایی معمولی در فاصله یک کیلومتری خانه بگردد به طور وحشتناکی سرگردان و بیقرار می شود و آن ویروس را تا جاهای دور می پراکند. حتی نظر دادم آب ترسی، نشانی شناخته شده هاری سگ را می دارد که کف خیص از دهانش بتکاند و با این کار ویروس را پخش کند. من گواه مستقیمی ندیدم که نشان دهد بیماری‌هایی که از طریق جنسی منتقل می‌شوند غریزه جنسی مبتلایان را زیاد می‌کنند اما حد می‌زنم چنین باشد خوب است این موضوعی بررسی شود بیشک حداقل یک دلیل اظهار شده در مورد شهوت‌زایی مگس زراری حاکی از این است که با ایجاد خارش و با داشتن مردم به خاراندن همان کاری را انجام میدهند که ویروسها در آن مهارت دارند در مقایسه دی ان انسان با ویروسهای انگلی مخرب تفاوت چندانی نمیبینیم. ویروسها ممکن است در اصل مجموعه ای از ژنهای گسیخته باشند. اگر ما بخواهیم تمایزی قائل شویم، باید بین ژنهایی باشد که انتقالشان به بدن دیگر از مسیر معمول تخمک و اسپر می میگذرد با ژنهایی که این کارشان از مسیر غیرمعمول حاشیه‌ای میگذرد. هر دو دسته ممکنن شامل جنهایی باشند که در اصر ژن خود کروموزومند یا در اصل از انگل مخرب خارجی هم یا شاید همانطور که در ثحات پیش حد زدم همهی ژن خود کروموزوم را نتوان به عنوان انگل همدیگر در نظر گرفت. تفاوت مهم این دو دسته ژن در شرایط جداگانه است که احتمالا در آینده از آن بهره خواهند برد. یک ژن ویروس سرماخوردگی، و یک ژن شورشی کروموزوم انسان در اینکه بخواهند صاحبشان ادسهٔ محکمی بکند اتفاق نظر دارند ژن رسمی کروموزومی و ویروسی که با مقاربت منتقل شده هر دو مایلند که میزبانشان جفتگیری کنند. و عجیب اینکه هر دو میخواهند میزبانشان از نظر جنسی جالب باشد به علاوه ژن رسمی کروموزومی و ویروسی که درون تخم میزبان منتقل می شود، هر دود در این خواست که میزبانشان نه فقط در جوف گیری بلکه در هر جنبهی ریز و درشت دیگر زندگی اتفاق نظر دارند تا والد حتی جد یا جده زحمتکش و خدمتگذاری بودن موفق باشد کادیس درون خانه زندگی می کند و انگلی که ما تا کنون صحبت می کردیم درون میزبانش. بنابراین جنها از نظر فیزیکی به اثر رخنمونی گسترش یافته شان نزدیکند. همانقدر که جنها به طور عادی به رخنمونی های رسمیشان نزدیکند. اما جنها میتوانند با فاصله عمل کنند. رخنمون های گسترش یافته میتوانند دامنی وسیعی داشته باشند. یکی از دامن دارترین هایی که می شود تصور کرد، گسترشی یک دریاچه را دربر میگیرد. سده بی دستر؟ مثل تار انکبوت یا خانه کادیس واقعا یکی از عجایب جهان است. کاملا روشنی صدف داروینی آن سرد چیست. اما یقینا باید هدفی در کار باشد. چون بیدسترها وقت و انرژی زیادی سرت ساختن آن کنند. دریاچه که بیدستر درست می کند احتمالا خانهش را از تعرض شکارگران حفظ می کند. به علاوه راه آبی راحتی برای حمل و نقل تنی درخت است. بیدسترها به همان دلیل از قرقاب کردن تنه استفاده می کنند که شرکت های الوار کانادایی از رودخانه و تجار زغال سنگ قرن هجدهم از آب راه ها استفاده می کردن. هرچه باشد، آبگیر که بیدستر میسازد ویژگی خاص و چشمگیری دارد. آن هم یک رخنمون است. رخنمونی ده کمتر از دندان یا دوم بیدستر و حاصل انتخاب طبیعی داردینی، باید تنوع جنی وجود داشته باشد تا انتخاب داروینی روی آن بتواند کار کند در اینجا باید انتخابی بین آبگیر خوب و آبگیری که چندان خوب نیست صورت گرفته باشد انتخاب در بیدستران ژنهایی را برمیگزیند که آبگیر بهتری برای حمله درخت ساخته است درست همونطور که ژنهایی را برگزیده که دندانهای خوبی برای بریدن درخت داشته آبگیر بیدستر اثر رخنمون ژن دستر است و میتواند تا صدها متر آن طرفتر گسترش یابد واقعا برد زیادی است